اولا نسبت مناسبت این سوره را ربط سوره را با سوره گزشته ارز بیکرم در سوره گزشته سوره کهف که این آیات گذاشتند یک سری شبهاتی جواب داده شدند اشکالاتی جواب داده شدند مثلا جوانان اصحاب کف هفت نفر بودند یا کمتر بیشتر اینها سیصد سال خوابیدند. معلوم میشه که بعضی از ویژگی های الوحیت انها بود انسان نمیتونه این همه مدت بدون غذا بمانه بدون آب بمانه پس معلوم میشه که به اینها خلعت الوهیت داده شده بود صفات خدایی درشون داده شده بود خداوند جواب میده بعض شبهه دیگه هست درباره ذوالقرنین این قزوالقرنین مگه یک انسان بود ما هم انسانیم چرا قدرت داشت که شرق و غرب را تمام را تصرف کرد اونجا خدای تعالی درباره ذوالقرنین هم جواب میده بعد درباره حضرت خضر میاد که حضرت خضر هم صفات خدایی داشت از کجا میدونیم بچه فردا چی میشه از کجا میدونه جلوتر پادشاهی کشتیاری چکار میکنه لذا اون هم خدای تعالی جواب دا. هر هرچی اشکال و هرچی شبه بود در باب توحید پاسخ داده شد در سوره کف در سوره مریم یک سری شبهات باقی مانده را خدای تعالی جواب میده. این شبهات بیشتر از سوی مسیحیان بود شما چطور می گید عیسی را پرستش نکنیم در حالی که اولا از مادر ایسا بدون بدون موسم بدون سبب خدا برایش غذا می آورد اونا که نمیگه خدا غذا می آورد غذا داشت معلوم میشه که قدرتی داره هر وقت دلش بخواد غذا برش فراهم میشه پس این قدرت خدایی داره به همین خاطر مریم را عبادت میکنند ایسا بدون پدر متولد شد معلوم میشه که اینجا یک دست غیبی هست بعد ایسا کورها را شفا میداد مریضی های و پیست را خوب می کرد مردها را زنده می کرد معلوم میشه که دست خدایی دارد قدرت خدایی دارد و بقیهش معجزاتی عیسی زکریا بعد از این که پیر شد سنش به سد رسید خانومش به نواد رسید بچه دار شد معلوم میشه که بالاخره چیزهایی هست قدرتی هست از این چینین چیزها که در واقع اینها ماجزاتی هستند که خدا به پیانبرانش داد همونطور که قبلا عرض کردم بسیاری از مردم که ما معتقدیم درک درستی و فهم درستی از معجزات ندارند از معجزات دلیل میگیرن بر تأثیر افراد بر تأثیر انبیا که می انبیا مثل خدا میتونن کار کاری ما رو حل کنند چون فلان ماجزه را داشت فلان ماجزه را داشت لذا اونها هم از معجزات این شبهات را مطرح می‌کردند الله عزوجل در این سوره مبارکه در سوره مریم این شبهات را جواب میده این سوره سوره مریم هست گرچه ذکر مریم در سوره علی عمران هم گذشت اون سوره هم به نام علی عمران هست امران پدر مریم بود اون سوره به نام پدر است این سوره به نام دختر است چونکه بحث مریم زیاد میاد و مطرح است و ببینید قبلا هم این نکتر را عرض کردم الانم عرض می کنم این نشان میده که واقعا اسلام دینی هست که در این دین تعصب نیست در اسلام واقع در واقع قرآن همه را فراخان ده قلی اهل کتاب تعالو اے اهل کتاب اے مسیحیان اے یهودین بیایید بیاید به مشترکات الی کلمت سوائیم بیننا و بینکم مشترک بین ما و بین شما همونی که پیانبران شما هم آوردن نعبد نعبوده الله. ببینید اسلام این قدر از تعصب بدور است که اونا به پیغمبر ما نسبت به پیغمبر ما کفر می کنند نسبت به کتاب ما توهین می کنند اما کتاب ما سورهاش بنام مقدسات اونها هستند. یک سوره نام کیه؟ مریم است یک سوره به نامی کیه پدری مریم آل عمران است یک سوره دیگه به چیه بنی اسرائیل است یک سوره دیگه به نام یوسف است سوره به نام ابراهیم است تمام کسانی که اونها جز اجدادشون میدونند ما سورهای بنامی به پس معلوم میشه که اختلاف اسوی اونها است اسوی ما نیست و از کنم که کفر از سوی اونها است از سوی ما نیست ما به همه ایمان داریم لا نفرقو بین احد من رسوله بین هیچیک از رسول خدا ما جدایی نمی اندازیم که بگیم به این ایمان دارم به اون ایمان ندارم این شما هستید مسیحیان یهودیان بعضی هم بیا قبول دارید بعضی را قبول ندارید و اخیرا الان اونا ای ندارم وقتی که یهودی تا هنوز اول منتظر پیغمبر آخری هستند که بیاید چون تو تورات آمده میگن از خود بنی اسرائیل میاد نی آمده الان میگن پیامبر اسلام یعنی این پیامبر مال مسلمان پیامبر است ولی مال مسلمان است مال ما نیست در حالی که پیامبری که در آخر میآید شما جمع شده بودی آبا و اجداد شما در مدینه که ازش استقبال بکنید اونجا اصلا از شام کوچ کرده بودید و هجرت کرده بودید رفته بودید یثرب که این پیامبر عظیم الشان خاتم النبیین میآید میخواید نصرتش کنید یاری کنید اما گرفتار تعصب شدید گرفتار اناد شدید دیدی چون از فامیل شما نیست از فرزندان اسرائیل نیست از فرزندان اسمایل هست لذا کفر کردید و تعصب به خرج دادید پس ببینید اسلام چه حسن عملی از خودش نشان میده که همیش ذکر اونهایی که اونها بیشون اعتقاد دارن ذکر اینها بی خوبی هست ذکر اینها به عرض کنم اونها رو ذکر میکنه الله تعالی خوبی را رو محاسنشون را زیبایی هاشون رو اما اونها نسبت به پیامبر ما چیکار میکنن کاریکاتور میکشند کارتون درست میکنند. کنند یک چهره خشنی اون شخصیتی که رحمت للعالمین است اون شخصیتی که برای تمام جهانیان صلح و محبت را به ارمغان آورد چی ازش نشون می دند چقدر بی انصافند اقوام دنیا الله می فرمائد کافا یا عین صاد این از مقطعات است الله اعلم بمراده ذکر رحمت ربک عبده زکریا بخش اول سوره اختصاص به زکریا داره یعنی ای ها ذکر ربک این ذکر پروردگار است که پروردگار ذکر رحمت پروردگار است بر بنده اش زکریا ببین خداوند چطور بر بنده اش زکریا رحمت فرستاد معنی که زکریا إله نبود بنده اله بود عبده او عبد الله بود بنده الله بود هر چی اگر به الله داد چرا قبل از این صد سال که در انتظار فرزند حسرت میکشید قبل از این چرا نتونست بچه دار بشه همش دعا همش مناجات الله نشامیده هر وقت بخ من بخوام میدم الله نشان می که به دست پیامبر من نیست به دست خود من است لذا زکریا را ببین چیکار کرد چطور از خدا خواست اذنا دع ربه ندا ان خفیا زمانی که ندا کرد رب اشرا صدا فر و فریا زد پروردگارش را ندا ان خفیا صدای مخفیانی ان خفی از اینجا معلوم میشه بهترین دعا اونه که مخفیانه باشه ایچ کسی نشنود فقط رب تو بشنود تو بشنوی و ربت علماء میگویند که این دعا برای اجابت بهتر است گاهی اگر بلند دعا میکنیم تا بقیه یاد بگیرند و ایلا بهترین دعا اونه که دعا چی باشه مخفیانه باشد آیسته باشد این ندا ربه ندا آن خفیا زمانی که ندا کرد از ربش ش نداي خفی استاي آیسته قال رب اني و هن العظم مني این تفسیر ندا هست در اون ندا در اون دعا چی گفت؟ قال رب اني وهن العظم مني بار اله حمان من استخانهم ضعيف شده پیر شدم وشتعل و اشتعل الراس شيبه و سرم من پر شد از پیری یعنی از موی سفید موی سفید و شیب یعنی پیری تمام سر من را در بر گرفت سرم سفید شده اما با وجود اینکه پیر از در سر هم آثار پیری در بدن هم ضعف و ناتوانی و پیری بازم از رحمت تو نامید نیستم ولم اکن بدعائی که رب شقیه بدعائی تو بخواستن از تو ای رب من محروم نیستم نباشم ولم اکن بدعائی یعنی در اصل بدعائی ایاک ترا خانم می خانم پروردگارا شقی و محروم نیستم یعنی ناامید نیستم باز هم امیدوارم این امید بیشتر از کجا حاصل شد شما در سوره آل عمران خان دید که می آمد پیش مریم دید که این مریم این غذا اصلا غذایی هست که هیچ این غذا موجود نیست این میوه علا موجود نیست چطور پیشش هست یا مریم و انالکی حاصل از کجا قالت هو من عند خدا داده اِنَّ الله يرزق مَنْ يَشَعُ بِغِيْرِ حساب فرشته می هر کسی خدا بخواد رزق می ده هُنَا دعا زكريا زَكَرِيَا رَبَّهِ اینجا دیگر زکریا امیدوار شد خدایا تو که اینطور بدون سبب غذا می دی بدون موسم می و می دی من هم می فرزند فرزن بی لذا زکریا علیه السلام اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی چی گفت؟ ولم اکم دعای که رب شخیخ فروردگارا دعایت بخواستن تو محروم نباشم و انی خفت الموالی من ورائی من میترسم از موالی من که پشت سرم هستن موالی جمع مولا هست مولا بمعنی پسرمو مولا بمعنی پسرمو می آید علیه السلام و السلام سر اموهای داشت که گفت که بعد از من که من بمیرم زیاد به اونها اطمینان نداشت از اونها می ترسید که میراث من میراث زکریا میراث مراد از میراث مال نیست چون پیامبران مال به ارث نمی گذارند اگر مال به ارث بگذارند وقت مردم خواهند گفت که پس اینا آمدن بنام دین مال جمع کردند مال به عرص نمی گزارند نحنو معاشر الانبیاء لا نرس ولا نورس رسول الله فرمود راویش ابو بکر صدیقه ما جماعت انبیاء نا از کسی ارس می بریم نا عرص بجا می گزاریم وما ترکناه صدقه هرچی بگزاریم پشت سر ما صدقه است. لذا انجا زکریا علیه صلات السلام می ترستد که این نهزتی که او دارد یعنی رسالت دعوت به سوی دین بعد از اون پسراموها خرابش نکنند ارث دینی لذا و اینی خفت الموالی من ورائی من می ترستم از موالی از پسرموهای که من ورائی پشت من هست پشت سری من هستند این ورای موتید تفسیر جلال نوشته وکانت امراتی عاقره از یک ترث زن من نازاست فهب لي من لذک ولی بار الها بوجود این استمی خام ببخش به من از طرف خدا ولیا که وارث من بشه ولی اینجا به چیه؟ وارث است شنو وارثی چنان وارثی کی یرثنی و یرث من آل یعقوب وارس من بشه و وارث آل یعقوب بشه خب از بنی اسرائیل بودی یعقوب همو اسرائیل است معلوم میشه که ارس ارس مالی نبود ارس دینی نبوت یرثنی و یرث من آل یعقوب و جعلوه رب رضیا بار الہا این کسی رکی می فرستی رضی باشد یعنی این فرزند مرزی باشد پسندی دی محبوب صالح اما خدایت تعالی فوراً اجابت کرد در پروردگار در ناومیدی نیست یا زکریہ اینا نبشروک بغلام ای زکریا ما ترا مجدمی دیم که اسم او یحیاء در آسمان ها اسمش را گذاشتیم نامش یحیی است نامش را ما گذاشتیم لم نجعل له من قبل سمیع ما نگذاشتیم قبل ازون هم نامی برای او یعنی قبل از پیدا شی هیچ کسی بدونام یحییا نبوده سمیع یعنی هم اسم هم نام لذا ما این رابطه دادیم حالا مذکری علیه سلام اعتراض نداره کیفیت روش رو میخواد بدونه خدا یا به چی صورت میشه چون من خودم پیرم زنم نازاست هم نازاست و هم پیره به همین صورت به ما فرزن میدی یا دستور میدی که زنی دیگه بگیرم زن جوانی ازدواج کنم کیفیتش چی باشد چندین کیفیت میتونه متصور باشه یا من و زنم را هر دور اچی میکنی جوان میکنی جوان میشیم بعدن به ما فرزند میده قال رب ان لا يكون لي غلام بار الها ب چه کیفیتی ابراهیم پسری خواهد بود و كانت امراتي عاقرا و الذن من حس عاقر نازا هست هم نازا هست و هم پیر هست و قد بلغتم من الكبر ايتيا و من اصبري فرطوت شدم عتی یعنی چی پیر فرتوت از بس پیرم فرتوت اللہ تعالی رب کیفیت را پرسید اللہ جواب داد قال کذالک قال کذالک ای زکریا همچنین به همین کیفیت به همین صورت یعنی نیازی نیست شما رو جوان بکنم خدا وقتی که قدرتش را میخواد نشون بده به بی صورت کمال نشون میده هم طرف پیر هست هم صاحب اولاد نمیشه ولی خدا میخواد قدرت نشان بده. قال کذالک همچنین قال رب هو عليه يهين اینجا فرشته دیگر با زکریا صحبت میکنه. رب تو گفته این برمن آسان است. ای زکریا خودت ربین و قد من قبل ولم تک شيئا ذرا آفریدیم قبل از این در حالی که تو هیچ چیزی نبودی موجود نبودی اصلا وجود خارجی نداستی زیرا خدا قادر است خب زکریا گفت پس بار الها نشانی ای ای قال رب جالی آیا بار الها نشانی برای من قرار بده قال آیَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِیَا آیَتُ نشانه تو این از که سخن نمی گوی با مردم سشب سویین در حالی که سالم استی مریض نیستی سویین یعنی تندرست سالم برابر ولی با مردم صحبت نمی کنی نمیتونی صحبت بکنی فقط ذکر من نمیتونی بکنی وقتی که زکری اون موعد فرا رسید ذکریہ از اتاقش از اون محراب محرابمون همون خانه از اون خارج شد مردم باید صحبت کردن اشاره می کرد گفت که شما عبادت خدا بکنید اشاره کرد که تسبیح بگوید ذکر کنید فخرج علی قومه من المحراب بر قومش خارج شد از محراب محراب همون عبادت خانه خصوصی را میگن هر یکی یک محراب داشت یک حجر برای عبادت داشت فا اوحا ایلیهم انسبحو فا اوحا ایلیهم اشاره کرد بسیونها اشاره بکی به مردم انسبحو بکرتم و عشیاء تسبیح خدا بگید باقی خدا صبح و شم ذکر کنید حرف نزنید، ذکر کنید. بالاخره خدا یحیی را داد، یحیا فرزند زکریا آمد به دنیا، یحیا بزرگ شد، خداوند به یحیا نبوت داد، یا یحیا خود الكتاب را ای یحیا کتاب را با قوت بگید، به یحیا نبوت داد، رسالت نداد. فرق نبی و رسول را می دونید، رسول اون کسی هست. صاحب کتاب صاحب شریعت کتاب و شریعت مستقل نبی اون کسی هست که برای او وحی می آید اما از شریعت پیغمبر گذشته رسولش پیروی می کنه تبعیت می کنه خداوند ازدوجل در بنی اسرائیل موسی را رسول قرار داد و ایسا را باقی هر چی پیغمبر بودن اینا انبیاه بنی اسرائیل بودند اینها صاحب کتاب نبودند صحیفه‌هایی برایشون آمد وحی می آمد ولی گفته شد به اونها که به همون کتاب‌ها عمل کنید لذا اینجا که به یحیی گفته شده خذ الكتاب کدوم کتاب بنویسینش تورات ای یحیی محکم به تورات بچس به تورات عمل کن یا یحیی خذ الكتاب بقوه کتاب را تو را با قوت بگیر با همت و جد و استیحاد بگیر و اعتیناه الحكمه صبییا الله می فرماید ما در سباب او حکم دادیم در بچگی انبیا معمولا سن نبوتشون چهل سال بعده اما بعضی استثناات هست عیسی علی سلام یحیی سلام یوسف سلام اینا انبیا هستن که قبل از این وقت خدا وَحَنَانَ مِّن لَدُنَّا وَزَكَاتًا وَكَانَ تَقِيَا یحییٰ از جانب ما دارای حنان بود یعنی دارای رقت قلب حنون بچی میگه مهربان ام الحنون یعنی ما داره مهربان یحییٰ در دلش مهربانی خاصی داشت رقت خاصی داشت وَحَنَانَ مِّن لَدُنَّا از جانب ما حنون بود ما این را این اخلاق براباستاده بودیم و زکات و دارای اخلاق پاکیزه زکات من پاک اخلاق پاکی داشت اینا برای ما باید الگو باشن اینا که خدا تعریف میکنه برای, برای, ما برای ما بندگانش و کانت تقیا و انسان متقی بود خدا ترس بود در همه حقوق هم حقوق الله هم حقوق عباد از خدا میترسی می ترسی تقوی را رایت میکرد. این سه چارم و برم بوالدی و درباب حقوق العباد نسبت بوالدینش خدمت میکرد بار بود نیک بود خادم بود چه خدمتی برای پدر مادر میکرد و پنجم ولم يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا يَحْيَا جَبَّار و نافرمان نبود جبار یعنی زورگو و تندخو خشن و همچنین عصی نافرمان نبود اصل جبار اونه که مسلط باشه بر دیگران و بتونه بر دیگر دیگران هم عاصی بی لذا اللہ تعالی تکریم می کند این بنده خودش را یحیی را چون که دارای این صفات خوب بود هر کسی صفات خوبی داشته باشه سلام خدا بر او هست لذا الله بر یحیی هم سلام فرستاد و سلام علیه سلام بر یحیی سلام بر یحیی یعنی چه یعنی از هر آفتی و از هر خطری محفوظه مأمونه هیچ مشکلی براش نیست هم در روز ولادتش هم در روز موتش هم در روزی که قیامت دوباره زنده میشه و سلام علیه یوم ولده و سلام برآن روزی که به دنیا آمد زائده شد و یوم یموتو و روزی که اون یحیام میمیرد و از این دنیا میرود و یوم یبعثو حیی و روزی که دوباره مبعوث میشه بلند کرده میشه از قبر در حالی که زنده میشه در تمام احوال بر یحیی از طرف خدای عز سلامتی هست یعنی از هر خطر و هر مشکلی اون در امان هست وذکر فی الكتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت انني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكبر غيا بعد ذلك ان كان في ارغاز اين سوره مباركه ذكر زكري زكريا ودعاء زكريا عليه وعلى نبينا افضل الصلوات والتسليمات احمد حال ذكر سیده مریم رضی الله عنها و عليه السلام هست که مریم بعد از انکه خدای عز به مریم را روش داد انبتها نباتا حسنا فکفلها زکریه كلما دخل عليها زکریه المحراب وجد عندها رزقا همه اینها را در سوره آل عمران خاندید بالاخره مریم علیه و السلام یک روزی از مسجد از بیت المقدس به سمت مشرق رفت. چرا به سمت مشرق رفت؟ فاصله گرفت. قرآن این را ذکر نکرده. اهل تفسیر نوشتند یا برای وضوع و نیاز و قضای حاجت بود یا برای غسل کردن بود پاکی حاصل کردن بود نیاز به اغتصال داشت على ای حال مریم به جای خلوتی رفت یک جایی تنها شد و نیازی داشت اونجا وقتی که رفت الله تعالی می فرماید ما جبرائیل امین را فرستادیم جبرائیل امین به شکل انسانی و به شکل مردی پیش مریم ظاهر شد و اذکر فی الكتاب مریم در کتاب مریم را ذکر کن اذن تبذت من اهلها مکانا شرقیہ وقتی که دور شد از اهلش در محل شرقی یعنی به مشرق به جانب مشرق رفت از مسجد الاقصی از بیت از کنم که بیت المقدس میگویند به طرف بیت اللحم رفت ف من دونهم حجابا معلوم میشه که انسان هر وقتی که یه جای برای نیازی میره هیچ کسی نیست هم جز آداب هست که همون جا هم بی پرده نباشد اینجا قرآن اشاره میکنه همون جا هم حجاب را گرفت پرده گرفت و هر نیازی که داشت در حجاب انجام داد فتخذت من دونی هم من دون القوم حجابی گرفت برای خودش و چادری بست و چادری انتخاب کرد و اونجا میخواست نیازش را که بسیار نمیشتند این بعد از پاکی از حیز بود اد انتبذت دور شدن نوشتم برای قسل از حیز بود فارسلنا الیها روحنا وقتی که اونجا اون حالت قرار گرفت ما فرستادیم به او روح ما روحنا این روح روح جبرائیل امین هست اضافت اضافت تشریفی هست الله تعالی این فرشته را به سوی خودش نسبت داده همون طور که خداوند ما را گاهی به سوی خودش نسبت میده یا عبادی يا عباديا الذين لذا إن جاءهم همون اضافتهاست، فارسلنا اليها روحنا ما او فرستادم روح من را يعني جبرائيل من را فرستاديم، لها بشراً سوّيّاً متمثل شد يعني بشکل بشري کامل به شکل بشر در آمد مریم وقتی که انسانی هست مریم عليه السلام و رضی الله عنها به خدا پناه قص قالت اني اعوذ بالرحمن من بالرحمن به ذات خدا پناه میبرم اگر تو انسان خدا ترسی نیا به طرف من من از از شر تو از آسیب تو از اضرار تو به الله پناه میبرم این كنت اگر تو پرهیزگار هستی اگر تو کسی هستی که از گناه دوری می دوری میکنی نزدیک من نیا قال انما انا رسول ربك جبرائیل امین خودش را معرفی میکند که همانا من فرستاده رب تو هستم فرشته هستم مریم علیه السلام از قبل کموبیشی با فرشته مراوده داشت چون که همیشه براش غذا می آورد همیشه ارز کنم که جلوی مریم انواع خوراکی ها می گذاشت الان به شکل بشر می آمد به شکل فرشته می آمد ولی بصیرت خارقل عاده کرامتن جلوی مریم حرکاتی از طرف فرشته بود چی خودش را میدید یا خودش را نمیدید غذایش را میدید بلقره کمو بیش معنوس بود مثل آمه انسان نبود وقتی که گفت من فرشته هستم مقداری مطمئن شد اما به چه منظوری آمدم لِعَهَبَ لَكِ غُلَهَا مَنْ زَكِيَّ که برای تو پسر اطا بکنم حبه بکنم ببخشم پسر پاکی پسری که او هم از آلودگی و از آلائش پاک هست خدا دستور داده که تو پسری داشته باشی مریم علیہ السلام تعجب میکنه که چگونه برای من پسر خواهد بود این کسی که وقت شده برای مسجد الاقصا کسی که چون کسی که وقت بشه دیگه اون ازدواج نمیکنه هیچ وقت همسر انتخاب نمیکنه به چه کیفیتی برای من غلام خواهد بود پسر خواهد بود در حالی که ولم یمسسنی بشرون تحال ز... بشری به من دست نزده ولم اکو بغیه ب... دست نزده یعنی به وسیله نکاح ولم اکو و من بغیه یعنی زناکار هم نبودم نه از طریق مشروع یا از طریق نامشروع هیچ انسانی نزدیک که من نیامده به من دست نزده به کیفیتی، کفیتی به صورتی میتونه برای من فرزن باشه قالت انا ای... قال که كذالك... امین طور کذالک یعنی چی؟ یعنی بلا... بلا لمس بشر بدون دست دن کذالک قال که ربك... ربت گفته هو علیه هی یعنی بر من آسان است من بدون پدر هم فرزند متولد میکنم، پیدا میکنم، بر من آسان هست، فرزندی از وجود تو بدون پدر وَلِنَجَهَ لَهُ آیَتًا و منا تا تا اینکه ما بگردانیم این را نشانه برای مردم یعنی درسی برای مردم باشد، برهانی برای مردم باشد، بر قدرت ما، دلیلی بر قدرت ما باشد و رحمت هم منا و رحمتی از جانب ما برای مردم خواهد بود رحمتی خواهد بود چون رحمت هدایت خواهد بود مردم را راهنمایی میکنه مردم را سبب نجات مردم میشه لذا اشاره میکنه که ای مریم جای بحث کردن و جای زدن نیست و کان امر مقضیه این یک امر فیصل شده ای هست یعنی خداوند صورت قط فیصل کرده و تصمیم گرفته شده حکم صادر شده این کار حتما میشه فحملت هو، پس او را به اون غلام زکی حامل کرد به چه صورت حامل کرد همون که شما خاندید اونجا که وقتی که به گریبان مریم به ارز کنم که به اصطلاح، پیراهن مریم و جامعه مریم یا سینه مریم وقتی که جبرائیل امین فوت کرد به سبب اون این حمل ایجاد شد لذا فن تت بهی مکان برد او را در یک مکان دوری یعنی وقتی که وقت حملش رسید حالا بحث اینه که آیا ایسال سلامات و سلام فورا متولد شد. همون شش ماه را سپری کرد در قرآن این چیز وجود نداره ولی این فا که برای تعقیب هست نشان میده بلا فاصله بلا فاصله به همون ارز کنم که زودی اگر همون ساعت و همون روز نبود ولی مثل بقیه مردم عادی نبود که نه ماه طول بکشه و اون زمان کامل طول بکشه یک مکان یک زمان نزدی زمان زودی که زیاد طول نکشید لذا فا اجا اهل مخاض وقتی که بجای دور رفت مخاض آمد پیشی او درد فرزند درد ولادت آمد و الى جذع نخلة به اون کنار تنی درختی رفت قرار گرفت اونجا که رفت درد آمد او را و درد زهب اصطلاح درد ولادت آمد وقتی که مریم احساس کرد که داره بچه را به دنیا میاره مریم علیه السلام نگران بود از اینکه که پیش قوم چی بگه چی توجیه داشته باشه برای اینکه که فرزندی داره لذا قالت یا قبل ای کاش من می مردم قبل از این و کنتو نسیم منسیه کلن از اذهان پاک می شدم نسیم منسیه یعنی کلن از ذهن و از, از کنم حافظه مردم پاک می شدم هیچ که نمی که چینی مریمی وجود داشته از بس که براش سنگین بود توجیه این کار آخه به مردم چه بگم کی باور می کنه کی قبول می کنه اللہ عز و جل فرمود که شما نگران نباش، خدا تعالی تمام چیز را برنامه ریزی کرده تمام چیز را اللہ تعالی برای مردم آشکار خواهد کرد لذا مریم علیہ السلام از عبرو از افت از این که بدنام نشه از این میترسید فنا فناداها من تحتها الله تحزنی او را صدا زد از پاین درخت از پایین درخت کی ایب جبرائیل امین این در یک بلندی بود گویا اللہ تحزنی تو ناراحت نباش تو حزین ما باش غم مخور قد جعل ربو که تحتک سریع پاین تو رب برای تو ایک چشمی قرار داده همین رو پروردگار خودش میکنه تو نگران این نباش اون چشمه هست برو که ناری اون چشمه از اون آب استفاده کن و همین درختی که هستی شاخش را تکان بده و حوزی علی و حوز نبی جنبان هر حرکت بده ان را به جنبان به سوی خودت به جزء ناختی این تنه نخل را تنه درخت خوررم را تکان بده تو ساقط تالی که جنیا برای تو می ریزد بر تو می ریزد کنم که روطببه تازه و ارز کنم که تازه تازه و رتب جدید برای میاره رتبی که بچینی و از اونها استفاده بکنی لذا این نعمت پروردگار را هم اون آب و هم این رتب خرما تازه از این بخور استفاده بکن و توجیهی که برای مردم هر وقتی خواست داشته باشی اینه که اشاره بکن بسویه تو با مردم صحبت نکن تو, خود تو بگو که من روزه هستم و اشاره بکن به عیسی علیه السلام اون خودش همه چیز را خواهد گفت لذا می فرماید که فکلی و شربی بخور از آن نخله و بنوش از اون آب از اون آب چشمه و قری عینا و خونک کن چشمت را فا اما ترین من البشر احدا اگر دیدی از انسانهاد کسی فقولی فقولی انی نظرت لرحمن صوما بگو یعنی اشاره کن اشاره کن که من نظر کردم برای رحمان روزه را فلن اکلم اليوم انسی من امروز با هیچ انسانی با هیچ بشری صحبت نمی کن ببینید از روزه مریم علیه السلام و از حرف نزدن زکریه معلوم میشه که این روزه در میان اون شریعت بود در اون شریعت بود روزه از حرف زدن برای ما روزه اصلی هست؟ مفترات ما خوردن و نوشیدن و مجامعت هست اما اونها گاهی این نوع روزه هم میشدن که هم نمیخوردن هم نمی نوشیدن و هم حرف نمی زدند یعنی اگر با کسی حرف می زدند هم روزشون می شکست فقط اونها ذکر می کردند یاد خدا می کردند لذا این نوع تقرب بود در دین اسلام این منسوخ شده المراد به الصوم عن المفترات المعلومة و عن الكلام. روزه از همین مفتراتی که برای ما مشخص است خوردنوش و همچینی از کلام کردن روزه بود یعنی نباید صحبت و كانوا لا یتکلمون فی سیامهم وکان قربه في دينهم روزه نمی گرفتند صحبت نمی کردند روزه گرفتنی و این قربتی بود و این حتی نظرش درست بود کسی نظر میکرد که من تاثیر روز با کسی حرف نمی میزنم یعنی چی؟ یعنی تاثیر روز فقط با خدا حرف میزنم تاثیر روز فقط ذکر یاد خدا نظره وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم عنه اما رسول الله در دين ما در شريعت ما عظيم من کردن فهو منسوخ في شرعنا در شرع ما منسوخ هست جلانچه امام جساس رزيز ذكرده ميقا رفع عن ابو بكر رضي الله عنه عزرك ابو بكر در زماني شون انه دخل على امرأة قد نزلت اللا تتكلم زنی نظر کرده بود که با هیچ که صحبت نکنه مثل نظر مریم فقال ان الْإِسْلَامَ هذا ما هذا ابو ابوبکر صدیق بهم گفت که این دیگر در اسلام تمام شده منسوخ شده صحبت کن این در اسلام الان جایگاهی نداره پس بس معلوم میشه که هم به صورت نظر بود هم به صورت روزه بود نسب به مریم علیها السلام دستور داده شد که تو وقتی که کسی با تو صحبت که اشاره کن. بگو من روزم با خود بچه صحبت کنید. لذا فقولی انی نذرت لرحمن صومه بگو من برای رحمان نظر کردم نیت کردم نیت روزه فلان اکلمن یوم انسیا هرگز من سخن نمی گویم با هیچ انسانی با هیچ بشری فأتت به قومها تحمله او را آورد پیش قومش در حالی که او را به بغل گرفته بود حمل کر می کرد او را قالو مريم لقد جئت فريا ای مریم یه چیز بسیار بدی آوردی فری به اصل به معنی افتراح هست کنایه از همون علی عزو بالله زنا هست بدکاری هست و ای چیز بسیار سنگینی که انجام دادی یا اخته اخه اخا هارون منظور از هارون هارون برادر موسانی است هارون برادر مریم است اونم هارون ابن امران هست موسی ابن عمران هارون ابن عمران اینم هارون ابن عمران هست اینم پدرش عمران اونم عمرانه اینم اسمش شهرونه اونم اسمش هارونه برای صحابه این سآل پیش آمد که یا رسول الله هارون و مریم چند قرن فاصله داشتند هارون در زمان موسا بود و مریم مادر ایسا است چندین قرن فاصله دارند چطور این را میگفتند هارون خوهر هارون. رسول الله صلی الله علیه و در جواب فرمودن که بنی اسرائیل فرزندان خودشون را به نام صالحین نامگذاری می‌کردند یعنی اون هارون پیغمبر خدا بود یکی از صالحین بود حالا این هارون را به نام او نامگذاری کرده بود همون طور که ما آن انجام می‌دیم به نام انبیا به نام اسم فرزندانی من را ابراهیم، اسرائیل، اسماعیل محمد، اسحاق، یعقوب اونها هم به نام های صالحین پس این هارون فرزند عمران برادر مریم این غیر از اون بود این را نامگذاری کرده بودن به نام اون هارون و این هارون را اللهم النصفی در تفسیر مدارک نوشته و کان اخاها من ابیها این کی بود؟ برادر مریم بود اما از طرف پدر فقط از مادر یکی نبودند و من افضل بنی اسرائیل یکی از بهترین ها بود همون طور که پدرش امران از بهترین ها بود اینم در مهت المقدس از بهترین ها بود آبید، زاهد، با ایمان لذا مریم خاهری او بود از طرف پدر گفته ای خاهری هارون اون انسان وارسته اون انسان شایسته تو این کار رو انجام دادی نه پدرت این کار بود نه پدرت بد بود نه مادرت بد بود تو از کجا اونا چون یقین کرده بودن که کاری از دستش انجام گرفته اشتباهی انجام گرفته لذا همون طور که مریم پیش بینی میکرد، همون پیش بینی همون سوء ایجاد شد یا اخت هارون ای خوهر هارون ما کان ابو که امرأ این نبود پدرت و مرد بدی سو یعنی بد زانی و ما کانت امو بغیه مادرت هم بغیه نبود زانی نبود هم پدرت در سلاح معروفه ترین انسان هم مادرت در پارسایی و در پاک دامنی و در خدا ترسیی تو از کجا تنبال این کار رفتی فاشارت فا اشهارت الی گفت بریم با صحبت کنیم با من صحبت نکن. اونا گفتند یعنی چی ما چطور بریم با طفل تو گهواری صحبت کنیم قالو کیف نکلم من کانا فی المهد صبیعا چی گونه ما سخن بگوییم ما صحبت کنیم با اون کسی که در مهد هست در گهواری هست و بچه هست طفل هست رضی هست با اون چطور صحبت کنیم؟ بل اخر اینا نرفتم به شکل به طرف عیسی اما عیسی خودش گفت قال انی عبد الله من بنده خدا هستم من عبد خدا هستم و خدای عزوجل به من خصوصیات داده اما ببینید از سخن زمان سبای عیسی علیه السلام و از زمان تفعولیت ایسا میره و این منتقل میشه به سخن زمان چی؟ زمان نبوت هر دو سخن را با هم قرین کرده در زمانی که پیغمبر شد هم گفت که خدا به من کتاب داده من نبی تعیین کرده این را در زمان سبا نگفت اونجا فقط خودش را معرفی کرد من بنده خدا هستم و گفت که من را خدای تعالی به صورت معجزه بدون پدر متولد کرده مادرم در این موضوع گناهی نداره خلاصه تمام ماجره را گفت اما قرآن مجید خلاصه فرم کردند آتانی الکتاب این زمان چی هست؟ زمان نبوت هست خدا به من کتاب داده و جعلنی نبیه و نبي نبی قرار داده و جعل نیم مبارکان ما کنتو مر مبارک قرار داده هر جا باشند به دلیل تبلیغ دین به دین يعني سبب بركت مي شوفم و اوصاني بالصلاة والزكاة و مرد خدا تعالى ان دليل عبدیت است مرد وسیعت کرده به نماز و زكاة ما دمت و حيات زنده باشم و برم ب والدتي و همچنین نسبت به مادرم احسان کنم و لم يجعلني جبارا شقیه والله الله تعالى مرد تندخول قرار نداده و محروم و بدبخت بد قرار نداده الله تعالى به من اخلاق کریمانی داده و من تا جایی که بتوانم احسان میکنم هم با مادرم هم با دیگران و سلام علیه و همچنین یک خصوصیت مخصوص من که خداوند بر من سلام فرستاده یعنی از هر خطر از هر آفت مرا محفوظ قرار داده و سلام علیه یوم ولدتو روزی که به دنیا آمدم و یوم اموتو روزی که میمیرم و از دنیا میروم و یوم ابعث و و روزی که من دوباره از قبر بلند کرده میشمم در حال زنده در همه احوال خدای عزوجل مرا از آفات از خطر از هر زربه و مس شیطانی حفاظت کرده لذا ایسا علیه و السلام وقتی که خودش را معرفی کرد مردم متوجه شدند و بعد از اون اللہ تعالی به ایسی صلی اللہ علیہ رشد خاصی داشت رشد عجیبی داد و عیسی را همه به نیت نیک به نیت خیر نگاه می کردند گرچه پادشاه اون زمان از ایسی صلی اللہ علیہ احساس خطر کرد عیسی وقتی که بچه بود حدوداً 8 سال و 9 سالش بود یک نبوغ خاصی داشت یک سری علایم خاصی داشت و حتی مریم علیه السلام مجبور شد ایسا را بردارد از مسجد الاقصا فرار بکنه رفت یک جای دیگه مخفی شد تا مدتی لذا الله تعالی می فرماید که ذلک عیسی بن مریم این هست عیسی بن مریم عیسی بن الله نیست عیسی بن مریم هست و فرزند مریم هست قول الحق الذي فيه يمترون یعنی yani من سخن میگم سخن حق سخن راست سخنی که در اون دارند شک دارند اهل کتاب چون یهود میگویند که ابن مریم نیست ابن حرام هست علی ازبل مسیحیان میگن ابن الله است اما هم اینها دروغ میگن هم آنان هم اونها افراد میکنند هم اینها اصل عیسی ابن مریم هست مخلوق خداست الله تعالی بدون پدر او را خلق کرده ما کان للله من ایتقذ من ولد سزاوار الله نیست الله برتر و بالاتر است لایق الله نیست ان برای خودش فرزندی انتخاب کند نائب انتخاب بکند سبحانه و پاک خداوند از نائب و از فرزند پاک است اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون هرگاه خداوند فیصله امری بفرماید هرگاه اراده بکند که کاری انجام بشه جزء که میگوید کن یعنی فقط خدا اراده میکند فیکون او ایجاد میشه درست میشه لذا الله تعالی الله به این سوره عیسی علیه السلام را با کلمه‌ی کن به دنیا آورد، به وجود آورد آیاتی از آیات الهی و نشانی از قدرت رب العالمین هست. و این الله ربي و ربكم ادامه مقال عیسی هست. عیسی علیه السلام چه گفت که آثانی الکتاب و نبیا و جعل نی ما کنت. وصاني بالصلاه والزكاه برا بوالدتي والسلام عليا در وسط جمله معترضه آمد که خداوند فرمود ذلك عيسى بن مريم لذا ادامه سخنرانی عيسى عليه الصلاه والسلام وان الله ربي و ربكم فاعبدوا حمانا الله رب منازع ای اس بني إسرائيل و رب شماس فقط و فقط اورا ایبادت کنیم بجز الله کسر ایبادت نکنید هذا سرات مستقیم این توهید فل ایبادت سرات مستقیم است اینک فقط یک الله را پرستش کنی سرات مستقیم است اما سؤال انجام کی ایسال صلاه و استلام وقتی که بتسوی توهید و یک تاپرستی دعوت داد چرا مسیحیان این هم اختلاف دارند هر یکی با خودشون چیزهای عجیب و غریبی اختلاف در بقیه مذاهب اختلاف بین احاد یک مذهب و افراد یک مذهب اختلاف هست ولی اینقدر نیست که اختلاف اصولی باشد اینها اصلا اختلاف روی اصل خدایشون هست یکی میگه یک خدا، یکی میگه سه خدا، یکی میگه سه جز. لذا الله تعالی می‌فرماید این اختلاف را بعداً ایجاد کردند، احزاب ایجاد کردند، گروه‌ها ایجاد کردند، فاقدلف الاحزاب و مبينهم. احزاب در میان خودشون اختلاف کردند. امروز احزاب مسیحیت با نام های دیگری هستند و نظراتشون فرق داره اون زمان هم چند گروه بودند که الان در تفاسیر هست امروز کسانی به اون نام به اون عنوان نیستند مثلا یک گروهی بود به اونها میگفتن نستوریه یک گروه دیگه بود به اونها میگفتن ملکانیه یک گروهی دیگر بود به انها می گفتن یعقوبیه تفصیل قرطبی اینا نوشته نوشته قالت نستوریه منهم هو ابن الله اختلاف را ببینید اختلاف در چی بود نستوریه که گروهی از مسیحیان است انها می گفتن هو ابن الله و الملکانیه گروهی دیگری که ملکانیه بود انها میگفتن گفتن سالس و سلاثا انها چی می گفتن؟ سالس و سلاثا و قالت اليعقوبيا هو الله. يعقوبيا ميگفت هو الله. يعني یعنی ستا ديدگاه بسيار دور از هم درباره ايساله سلّات و السلام. پس فقط الف احزابو من بينيهم. اگر در توّهيد مشکل دارند، چالش دارند، این احزاب درست کردند، اين راه گروههاي متفاوت درست کردند. وإلا تبلغي إيسا معزي إيسا هميني كمامي خاني إن الله ربي وربكم فاعبدو هذا صراط مستقيم الله تعالى تخويف بيان ميفرما يد براي ان انسانها بدبخت و گمراهي كي انها را در ميان مردم درست کردند انو مسائل را در ميان مردم ايجاد کردند مردم را گمراه کردن با ایجاد کردن چنین بدعاتی ایجاد کردن چنان نظریات کفری، یعنی هر یک از اینها نظر کفری هست. چه سال و است باشه، چه ابن الله باشه، چه هو الله باشه، هر یک کفرش جای خودش است. لذا الله می‌فرماید: فوایل ل لذین کفرو هلاکت برای کسانی که کفر کردند کسانی که این کفریات را درست کردند من مشهد یوم عظیم اون حلاکت کجاست؟ یعنی در اون صحنه روز عظیم مشهد اون صحنه قیامت را میگن چون همه اونجا حاضر میشن مشهد محل شهود و حاضر شدن همه انسان ها همه اونجا چی میشوند حاضر میشند. لذا از شاهد شهود و حاضر شدن اون روز عظیم که اونجا خواهد بود در اون روز برای اینها حالا برای اینها بد اسمع بهم و ابصر این سیغه تعجب هستن اسمع بهم چقدر آنها شنوات چقدر بینا یعنی چه؟ اینجا حقیقت را نمی کور هست اینجا واقعیت را نمی شنوا کره اونجا چقدر بیناست چقدر شنواست یعنی خوب چشمش باز میشه، خوب گوشش باز میشه. اونجا واقعیت را می بیند همین مسیحی که خودش را اینجا کرو کور گرفته اونجا نه اسمع و ابسر هست از همه شنواتر از همه بیناتر یوم یعتوننا روزی کمی آیا پیش ما از همی شنواتر از همی بیناتر لیکن الظالمون اليوم في ضلال مبين، اما امروز این ظالمان این مشرکان ان کافران در گمراهی آشکار امروز نمی امروز نمی شنوان حقرا وانذرهم یوم الحسر بترستان اے رسول الله انہارا از روز حضرت، از ان روزی که همه حسرت میخورن یعنی روز قیامت یک نامش یوم الحسرت هست همه حسرت میخورند هم نیک حسرت میخوره هم بد بدان حسرت میخورن که چرا ما نکردیم نیکان حسرت میخورن چرا ما بهتر نکردیم بیشتر نکردیم هر کسی حسرت میخورد وانذرهم يوم الحسره اذ قضى الامر زمانك امر فيصله مشه زمانك كار تمام مشه وهم في غفله وهم لا يؤمنون انها در غفلت قام ودنها دیگه اونجا ایمان نمی آوره انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون الله می فرمای بالاخره همه شما از اینجا کوچ میکنید از این اون دنیا در اون روز حسرت همه شما حاضر میشید همانا ما ایم که وارث زمین میشیم و من علیها تمام اون چیزی که بر زمین هست و ایلینا یرجعون فقط و فقط به سوی ما برگردانده شود. لذا این شبه دوم بود در باره مریم این بحث الوهیت نبود بحث قدرت خداوندی نبود بلکه مریم و وجود ایسا در واقع دلیل قدرت پروردگاره اگر شما از این ولادت و از این پیدایش به قدرت فوق العاده پی میبرید به قدرت خدا پی ببرید خدا رب به وحدانیت عبادت کنید به یگانگی عبادت کنید در عبادت خدا کسی را شریک نسازید. ذالک عیسی ابن مریم. عیسی ابن مریم اینه. به این شک خدا او را خلق کرد به وجود آورد. و فی الکتاب ابراهیم. اینجا باز دلیل نقلی السیدنا ابراهیم ببینید ابراهیم همین مطلبی که ما حصل داستان عیسی و مریم هست. که بچیم رسیم به اینکه معحصل این داستان نتیجه این داستان اینکه یعنی هیچ معبودی بجز الله لایق عبادت نیست ابراهیم عیناً همین تبلیغ کرد شما همه عیسوی هستید عیسا رو دوست دارید همه ابراهیمی هستید ابراهیم را دوست دارید همه موسیوی هستید موسی رو دوست دارید لذا تبلیغ همه اینا میت همه یک چیز بود شما چرا راه گمراهی را انتخاب کردید شما چار بیراه رفتید و ذکر الكتاب ابراهیم یاد کن در کتاب ابراهیم را در قرآن یاد کن انه کان صدیقا نبیا همانا ابراهیم صدیق بود در قول و در فعل و در نیت و در همه حرکات ابراهیم راست بود و خدا بود فرستاده خدا بود اذ قال لأبیه یا عبتی از اینجا صداقت ابراهیم هم در قول هم در فعل اذ قال لأبیه یا عبتی زمانی کی بپدرش گفت ای پدر من لمتعبد ما لا یسمعو ولا یبصر چرا پرستش می کنی چرا عبادت میکنی آن معبودانی را آن معبودان باطلی لا يسمع نمیشنون ترا ولا يبصر ونمی بینت ترا وحال ترا ولا يغني عنک شیئا دف میکن دور نمی کن الاسطوهی چیزی را چرا چنین خدایانی را عبادت میکنی یا عبت انی قد جاءني من العلم ای پدر من همان آمده ابراهیم پیش من علم آمده با وحی این علم از کجا آمده؟ به مکتبی نرفتم از طریق وحی الهی آمده آمد پیش من اون علمی که مالم یادت که اون علم پیش تو آمده تو از اون اطلاعی نداری لذا پدرام خواهشم از تو این است که فت در این موضوع در موضوع دین مرا پیروی کن از من تبعیت کن اهدک الصراطا سویا من بر راه راست راہنمائیت میکنم، کنم اون راهی که راه درست است راه صحیح است راه راست است راہنمائیت میکنم، و اینهایی که تو عبادت میکنی غیر خدا در واقع تو شیطان راداری داری عبادت می‌کنی چون این مسیر و این خط خط شیطان هست. یا ابتل لا تعبد الشیطان ای پدر من پرستش نکن شیطان را ان الشیطان کان للرحمن عصیا شیطان نسبت به رحمان نافرمانی نافر نفرمانی کرد رحمان به او گفت سجده کو نکرد الان اون شیطان داره ما ختم خط میده داره راهنمایی میکنه و اگر این راه را, را ادامه دادی راه شیطان را راه را شرک را شرک راه را شیطان است راه غیر الله پرستی را رحمان من تو را عذاب میده یا ابته انی اخافک ان یمسک انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن ای پدر ممی می سم بهت برس از از جانب الرحمان فتکون للشیطان والیا تو دوست شیطان میشه و شیطان دوست تو میشه شما با هم همدم و دوست خواهی شد لذا بیا من تو راهنمایی میکنم نرو دنبال شیطان اما پدر ابراهیم عليه الصلاۃ والسلام میگه قال ارغب انت عن الہتی سیغه رغبه وقتی که باصله عن باشد به معنی چی میشه اعراض من یرغب عن ملت ابراهیم اینجا میگه اراغب ان عن آلیهتی یعنی ای ابراهیم آیاتو از آلیهی من رویگردانی اعراض میکنی و با آلیهی من دشمنی مخالفی اراغبن انت عن آلیهتی از آلیهی من تو ای راز میکنی یعنی ترک میکنی ایبادتی انها را ایبادتشون نمیکنی؟ ای ابراهیم و بعد ابراهیم راه تهدید بیکنه لالم تنته لارجمن و اگر باز نیایی از این مأیزه توحیدیت از این که فقط خدا را عبادت کن ای ابراهیم هم سنگسار سانسار میکنم لارجمن نک وحجرنی ملیا مرا ترک کن ملیا یعنی دهرن طویلا زمان طولانی یعنی برای همیشه نمیخم ببینم تو را برای همیشه مرا ترک کن ملی ای دهرن طویلا یعنی ای ابراهیم برو از من جدا شد نبینم دیگه تو را در زبان و اصطلاح محلی خود ما میگن رختت را نبینم دیگه گویا ابراهیم چنین کلمه گفت چنین جمله گفت که تو که داری به خدا یعنی من توهین می‌کنی من نمیخوام تو را ببینم دیگه ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام گفت قال سلامون سلامٌ علیک بعضی علمان مشهدان این جا روی این که آیا سلام گفتن به مشرک جایز ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و فرمود در رابطه با یهود و نصاره شما بادی به سلام نباشید اول شما سلام نگوید یعنی سلامشون نگوید اگر اونها به شما گفتن شما جوابشون بدید علیکی بگوید چنانچه رسول الله همین گفت علیک فقط. پس وقتی که سلام گفتن درست نیست چطور پدرش را سلام گفت علما نوشتن که این سلام سلام متارکه هست بعضی توجیحاتی دیگه هم آوردن گفتن سلامون علیک یعنی سلامتی از کفر یعنی خدا کنه پدر از کفر صالم باشی خدا هدایتت کنه معنیش این میشه از کفر دور باشی یا بهترین توجیح همونه که این سلام سلام متارکت است یعنی دیگه من بعد حرفی ندارم معنیش همه میشه سلام عليك ساستغفر لك ربي دغهار في بات ندارم پدر اما حتما حتما برای تو از رب مغفرت میخواهم اولا قرطبین جان نوشته والجمهور على ان المراده بسلامه المصالمة التي هي المطاركه للتحيه مراده سلام ابراهیم چی هست اون سلامتی به معنای سلامی که من متارکه هست یعنی ترکی من من تو را ترک করতাম رهایت করতাম و سلام تحیه و سلام خوشامدگویی نیست ساستغفر لک ربی برای تو از رب مغفرت می خواهم و شما خواندید که ربنا نغفر لی ولوالدیه اون استغفار به معنای بخشش خواستن برای یک مشرک و یک کافر نیست بلکه استغفار خواندن کنایه از هدایت دعای هدایت هدایته خدا در صورتی میبخشه که او را ایمان بده هدایت کنه بعدن میبخشه بس خدایه او را ببخشی یعنی اونا هدایت کن و ببخش بنابراین ابراهیم علیه و السلام گویا برای هدایت او وعد داد از خدا بخواهد اما فلما تبین له انه عدو لله تبرئ منه و خاندیم ابراهیم برایش مشخص شد که نه این در حالت کفر می میره یا مرد تمام شد فیصله شده این ایمان نمیاره لذا بعد از اون اعلام براءت کرد خدای من از خاندان استغفار برای او و مغفرت تالبییدن برای او بیزارم دیگه نمیخوام بالاخره این اون آوايل بود. این نهو کان بی حفییه. همانا رب نسبت به من مهربان است. مهربانه هر را و که قبول کنه. و اعتزلكم همانگه که تو خاستی ای پدر من هم از شما جدا میشم نتنها از تمام خدایات از تمام عقاید خرافیت و اعتزلكم و ما تدعون من دون الله من از شما جدا میشم و از آن چک شما فریاد میزنی به الله من از همه اونها فاصله میگیرم و ربي و من تنهار رب من هیچ کسی را به جز از الله فریاد نمی‌زنم عسى الله اكون بدعاء ربي شقيا امیدوارم این که نباشم نسبت به خواندن و دعای رب محروم یعنی همون طور که شما شقی هستید به عبادت اسنام من امید دارم این طور نباشم شما بت‌ها را عبادت می‌کنید بت‌ها را صدا می‌زنید محرومید از هر رحمت و از هر خیر و برکت محرومی ولی من امیدوارم مثل شما محروم نباشم من چون معبود حقیقی را صدا می زنم و بغیر از او کسی را صدا نمی زنم من محروم نباشم بلکه من مورد ترحم و برکات او قرار بگیرم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله الله می وقتی که از اونها جدا شد و از خدایان. اونها از ما یعبودون من دون الله جدا شد الله تعالی ببین اینجا میگه وهبنا له اسحاقا و یعقوب گرچه به ابراهیم خدا ما فرزند داد ولی بعد از هجرت کردن گویا اینها هدیه پروردگار هستند وقتی که بنده ای به خاطر خدا مشقتی را رنجی را برداشت میکنه خدا تعالی به او همین جا یک عطای نقد میده ابراهیم که سال هاست اولاد نداره فرزند نداره دیگه خدا دلشت را با فرزند دوتا فرزند خوشش میکنه پشت سری هم اول اسماعیل را میده بعدا اسحاق را میده فلماتزلهم وما یعبدون من دون الله زمانی که از انها جدا شد یعنی جسمان از نظر فیزیکی بدنان و از خدایانشان از خدایانشان هم از نظر اعتبار مکان هست بیعتبار عقیده و ایمان از قبل دور بود از اونها و له اسحاق و یاقوب اسحاق و یاقوب ربی او و کلا جعلنا نبیه هل یکی رما قرار دادیم نبی قرار دادیم وَوَهَبْنَا لهم من رَحْمَتِنَا بها بخشيديم از جانب خودمون از رحمت خودمون لِسَانَ صِدْقٍ لسان صدق عليا وقررنا برهنها لسان صادقانه وبلند بالا برتر لسان الصادقان يعني چه يعني ابراهيم عليه الصلاه والسلام رچنا از ابراهیم تعریف و تمدید میکنند. ابراهیم واحد پیغمبری هست که تمامی مذاهب و تمامی گروها از ابراهیم تعریف میکنه. هم مشرک میگه من ابراهیم، هم مسیحی میگه، هم یهودی میگه، هم مسلمان میگه. پس لسان صدق نالله ما اندولسینه نوشته لسان صدق یعنی السناو الحسن الباقی عليهم آخر الابد قاله ابن عباس ابن عباس این تو گفتے کہ تعریف و تنجید خوب سنا و صفتی کہ همیشه باقی بماند تا ابد ابراهيم رما عطا کردیم این از کنم نیک نامی را این خوش نامی را ان کے از ابراهیم به خوبی یاد بشه واذكر في الكتاب ووهبنا لهم من رحمتنا فلما اعتزلهم ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا لسان صدق بإمانا تعريف وتمجيد بسيار بلندو بالا واذكر في الكتاب موسى بعد الذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام والدليل النقلي أز إبراهيم نوبت به موسی رسد ببینید ابراهیم و موسی را هر دو این بزرگوار را مسیحیان قبول داشتن یهودی ها بودند که به مسیح ایمان نداشتند اما مسیحیان به موسی ایمان داشتند و مسیحیان به تورات هم ایمان داشتند کتاب موسی میدانستان الله تعالی از موسی دلیل آورده و ذکر فی الكتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسول النبی او برگزیده بود اون انتخاب شده پروردگار بود و موسیٰ علیہ السلام رسول و نبی بود هم فرستاده الله بود و هم نبی خدا بود هم هم پیانبر بود و هم صاحب شریعت و دین بود و وحبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم ام به ورثیت و انا دينه من بحث نبوت موسی و رسالت موسی است که وقتی که موسی در اون سفر مدین از مدین به مصر برمیگشت در اون بیابان الله می فرماید که ما از جانب راست تور صدا زدیم موسی علی صل و سلام به گمانی این که راه را گم کرده و اینجا آتشی هست حتما بر آتش راه هست از اونها راهنمایی میگیره، می گیره خط می گیره لذا به اون سمت رفت الله می فرماید و نادیناهم من جانب توریل ایمن او را صدا زدیم از جانب راست کوه تور و قربناه نجییا او را ما کردیم به عنوان سرگوشی یعنی با او به خاص مکالمه کردیم کلام گفتیم و وهبنا له من رحمتنا و به از رحمت خودمون از رحمت محزی که ما داشتیم بر اساس مطالبه و خاسته خود او اخاه هارون نبی یا برادرش هارون را به عنوان نبی و به عنوان خدا هما هم انتخاب کردیم که بازوی راست موسی علیه السلام باشه. و ذکر فی الكتاب اسماعیل همچینی در این قرآن از اسماعیل یاد کن. ببین درباره موسی و ابراهیم که شما خواندید شریعتشون هم معروف هست و اون قومی که به سمت اونها فرستاده شدند هم معروف هست در چندین جای قرآن کریم آمده. اما ذکر اسماعیل زیاد نه آمده. فقط خصوصیاتی که درباره اسماعیل آمده بیشتر تو همین آیات آمده. اولا اسماعیل علیه و السلام را الله از ذا جل به سوی قوم جرهم فرستاد. جرهم قومی بود که باشندگان اولیه مکه بودند زمانی که خداوند به اسماعیل و حاجر اون چشمه را انایت کرد. چشمه زمزم را آب زمزم را لذا این جرهم یک قبیله سرگردانی بود یک قوم سرگردانی بود که اینها دنبال آب میگشتند از دور دیدند که بر فراز مکه مکرمه اینجا پرندگانی هستند اونا تشخیص دادند که اینجا اینجا آب هست پرنده وقتی که پیدا میشه اینها آمدند آمدند اینجا دیدند که مادری و فرزند خردسالی دارد اجازه گرفتند که ما همین جن میخواییم چار در بیندازیم از آب استفاده میکنیم او زمان آبی نبود حضرت هاجر علیه السلام اجازه دادن گفتند بشرتی این که فقط از آب استفاده میکنیم آب مال خود ماست اونا قبول کردن که آب مال شماست دیوانا خبر نداشتن که این آب را چگونه خدای از و به اونها داده حضرت هاجر هم از خداش میخ که ای داشته باشه همسایگانی داشته باشه چون تنها بودند و بالاخره یک زن تنها و یک تفل رزی زیرا اونها هم اجازه گرفتند همین نزدیکی ها چادر انداختند و از این آب استفاده می تا اینکه اسماعیل کم کم بزرگ شد و اسماعیل هم زنی از همین قبیله گرفت از قبیله جرهم گرفت این عربای اصیل بودند و بعداً خدای عزوجل اسماعیل را به عنوان پیغمبر برای همین قبیله جرهم انتخاب کرد برای اهل مکه این هم دیگه باشندگان یان مکه بودند به خاطر اون آب همیشه اونجا ماندگار شدن پس اب اسماعیل علیه الصلا و السلام مبعوث شدن برای قبیله جرهم و اونجا وقتی که اسمایل تعین شدن چند خصوصیت که مال اسمایل هستن قرآن اینجا بیان کرده یکی این که انه کان صادق الوعد ایشون صادق الوعد بود یعنی هر ای که میکرد کرد نداشت خلف نمیکرد و در وعده خودش صادق بود این صفت صفت انبیا هست. بهترین چیز اینه که انسان در وعده صداقت داشته باشه و این را واقعا درست به میراث گذاشته بود در باره رسول الله صلی الله علیه وسلم داریم تو سیرت پیغمبر میاد قبل از اینکه پیغمبر بشه یک کسی حقی از پیغمبر میخواست یه پولی باید پیغمبر به او پرداخت میکرد هنوز به پیغمبری نرسیده بود یه جایی بود همون در مکه اونجا وعده کرد که فلان روز میاد و پول را یا همون امانتم را از تو میگیرم میام میگیرم آن حضرت وعده کرد باش میام رسول الله سر وعده رفت هنوز پیغمبر نشده صادق الوعد را از اسمایل به عرص برده بود سر وعده رفت اون نیامد پیغمبر نشست نشست تا دیر شد شب شد پیغمبر برگشت خونه خودش روز بعد دوباره رفت همون جنش هست. که وعده کرده در این محل چرا نیامد خلاصه این روز هم تمام شد خبری نشد روز سوم رفت که وعده خلاف نشه گرچه وعده تمام شد روز اون بند خدا آمد او که آمد رسول الله گفت که کجا بودی من سه روز اینجا منتظرت هستم او گفت که برای من گرفتاری پیش آمد و اسخائی کرد بلاخره اون که امانتی بود جنسی بود از رسول الله تحویل گرفت و رفت از رسول الله قبل از نبوت هم صادق الوعد بود و این را از جدش حضرت اسماعیل به ارس برده بود اسماعیل یکی از اوصافش ایره که انه کان صادق الوعد صادق الوعد بود و كان رسول النبيه و هم رسول خدا و نبی خدا بود و كان يامر اهله بالصلاه و الزكاه اهلش امر میکرد معلوم میشه که انسان که خداوند بهش صلاح داد بهش هدایت داد انسان به فکر خانواده خودش باید باشه خیلی ها هستن حتی خواص از خانواده خودشون بیخبرند فرزند نماز میخوری یا نمی خونی زن چطوره دختر لذا سیرت انبیا و بالخصوص سیرت اسماعیل علیه السلام اینه که روی اهل ایالش کار می کرد و کانا یأمر اهله بالصلاة اهلش را امر میکرد کرد به نماز و زکات یعنی به همه عبادتا خصوصا نماز و زکات و کانا عند ربه مرضیه چنان عابد بود که پیش پروردگار بنده پسندیدهی بود اسماعیل علیه صلات و بنده پسندیدهی خدای تعالی بود این ذکر اسماعیل هست وذکر فی الكتاب ادریس در کتاب ادریس را یاد کن ادریس علیه صلات و سلام در چه زمانی بود؟ الله عالم ما همین می‌دونیم که قبل از آدم علیه السلام هیچ پیغمبری نبوده. قبل از آدم هیچ پیغمبری نبوده. آدم علیه السلام اولین پیغمبر و اولین نبی خداست و اولین انسان است. قبل از اون ن انسان بوده نه پیغمبری بوده. بعد از آدم علیه السلام یکی از فرزندان آدم به نام شیست علیه السلام, و السلام به عنوان پیغمبر شدند اما تعیین اون پیغمبران فرق می کرد اونها فقط چون زمان شرک نبود کفر نبود ابتدا بود اونها فقط تشویق و ترغیب و طاعت و عبادت و مردم اگر گرفتار فساد می شدند فساد اعتقادی نبود فساد عملی بود مثل قابل که برادرش را کشت بحث کفر و ایمان نبود فقط بحث سوی عمل بود بعد از شیست علیه صلات و السلام ایشون حضرت ادریس به عنوان پیغمبر مبوس شد ادریس را میگویند که در چهارمین پشت به آدم علیه صلات و السلام میرسه و بعضی کم تر گفتن و نوح علیہ اسلام از فرزندان ادریس اینکه فرزند سلبی باشه هم سچار واسطه با ادریس فاصله داره بعد از ادریس نوبت نوح می پس بر اساس این توضیحی که ارز کردم که از قصص الانبیاء گرفته شده ادریس علیه صلات و اسلام قبل از نوح بود اللہ می فرماید انهو کان صدیق النبی همانا ادریس صدیق بود راسگو بود و نبی خدا بود و رفعناه مکانا علی ما بی او بلندی دادیم مکان بسیار بالای دادیم منظور از مکان علی چیه؟ رتبتن هست نه مکانن هست بعضی ها مکانن گفتند یک داستانی درست کردند داستان زیفه واقعیت نداره اصل مفهوم اصلی همینه که مکان علی یعنی چه؟ رتبتن نه مکان داستانی درست کردند البته یک نکته این داستان خوبه که درسی هست این از اسرائیلیت هست و قابل اعتماد و قابل اعتبار نیست می گویند که حضرت ادریس علیه سلاط و السلام وقتی که عبادت می کرد خداوند فرشتهی را برای او فرستاد و چون ابدریس هم خودش عبادت می کرد هم بندگانش را بندگان خدا را راهنمایی نمایی می کرد خداوند به او مجده داد خوشخبری داد که ای ادریس هرچی که این بندگان تا روزی که تو اینها را تبلیغ می تشویق می کنی هرچی که اینها اعمال انجام میدهند دهند به همه به تو می در عجر همه تو صحیم هستی خب یک قضیه مسلمی هست شما بر سبب هدایت صد نفر بشید این صد نفر تا روزی که نماز میخونه شما هم با اونها صحیم ادریس علیه صلات و السلام روی این بسیار حریص شد که من پس میتوانم خیلی عجر برای خودم جمع بکنم بیا حریص بودند لذا فرشته که ادریس علیه السلام با او ارتباط داشت و با او نزدیک و سمیمی بود اون فرشته پیش ادریس آمد به او گفت که من یه خواهشی از تو دارم اون گفت چی؟ گفت که ازرائیل را که به من مهلتی بده عرض کردم حریص بودنش بر چی بود؟ بر عمر و زندگی و تو از از دنیا و بهره گیری از دنیا نبود. حریص بود بر اعمال. گفت اسرائیل را بگو که به من مهلت زیاده بده. که من تقدیر به مانم کار بکنم. اون گفت که من میبرمت پیش اسرائیل. مطرح می کنم. گفت که خوب بهتره. فر بر پشت خودش برد دریس را سوار کرد گویا یعنی مثل هواپیما از اینجا که رفتم به آسمان چارم که رسیدند اونجا اسرائیل داشت آمد به زمین اونجا او فرشته اسرائیل را ملاقات کرد و به اسرائیل گفت که من خاست ای دارم چیه خاست گفت که؟ ادریس پیغمبر دوست من هست از من خواسته که پیش تو بگم که به اون محلتی داده بشه لذا برای تو اگر مقدور از پیش خداوند مطرح کن به ادریس مهلت زیادی داده بشه تا زیاد عمر بکنه او گفت که الان کجاست؟ ادریس گفت بر پشت من هست گفت خوبه من منده بودم چکار بکنم خداوند به من دستور داده بود که روح ادریس را قبض بکنم و هم دستور داده در آسمان چارم رویش را قبض بکنم برای من مفهوم نبود که از زمین چطور بیارم روی آسمان چارم اینجا رویش را قبض بکنم بس اون خودش آمده نه دستوره که کارش و وقتش تمامه در همینجا باید رویش قبض بشه بالاخره بعضی ها این داستان ها را درست کردن این داستان داستان اسرائیلی هست و بعضی از اهل تفسیر همین گفتن و رفعناهم مكانا علیا این مك مكانا هست یعنی خدا اون رو اونجا برد در کجا در آسمان چهرون برد ولی نه این مکانا نیست این چه رتبه است لذا الله تعالی این انبیا را ذکر کردند حال الله می فرماید اولئک الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم إن هايك خداوان برؤنها إن عام خاص فرمود أز أنبياء أز جملة أنبياء من ذرية آدم أز أو ذرية آدم هستن أز أولاد آدم هستن حمينها وممن حملنا مع نوح وهم چينين أز أولاد أون هايك ما حمل كردم هم رابانوح یعنی بعد از ادریس بقیه از اولاد کی هستند؟ نوح علیہ السلام و کسانی با نوح حمل کردیم و من زریت ابراهیم و اسرائیل و همچنین از اولاد ابراهیم و اسرائیل هستند از اولاد ابراهیم انجا کی رخان و وحبنا له اسحاق و یعقوب و اذکر فل کتاب اسماعیل این اولاد ابراهیم هستند اولاد اسرائیل کی از اولاد یاقوب موسی و ایسا کی ذکرشون را ام خواندیم. و من هدینا و اجتبینا و از اونهایی کمار راه کردیم و برگزیدیم اما همه این انبیاء یک وجه مشترک داشتند اذا تطلاع عليهم آیات الرحمن هرگا برآن آیات الرحمن تلاوت می شودو آیات الله تلاوت می شد خر و سجدن بسجد می افتادن و در حالی که گریه می کردن و بکییا ای خر می افتادن گریه کنان با گریه و با احساس احساسات خاص الله عز و جل را سجد می کردن لذا این انبیا که ذکرشون آمد چنین انبیا والا والا مقامی بودند عالی شانی بودند بزرگواری بودند اما کسانی که پشت سر آنها جای نشینانی آنها شدند پشت سر آنها وارث اون انبیا شدند اونها آدمهای زیاد نرمالی نبودند فخلفا من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه منظور از این خلف اضاعوا صلات کیه علمای سوء علمای دین فروش علمای که طالب حواه و شهوته دنیا بودن فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة جانشين شد پشت سري خلف نا اهلی كي أضاع الصلاة نماز رابزاية کردن هم اعتقادا هم عملا اعتقادا برا غير خدا نماز خاندن عملا انكي الذين هم يراؤون و يمنعون المعاون برا ظاهر بود واتبعوا الشهوات اُنها دنبال کردند شهوات و هوای نفسشون را فسوف يَلْقَوْنَ غَيَّا ان قریب اِنها امی مواجه میشن با غی غی بمعنی گمراهی است ورین جب جزاء الغی مراد است یعنی در قیامت جزاء این گمراهی خودشون را خواهند دید فسوف يَلْقَوْنَ غَيَّا پا اینش بین فی الاخرات جزاء الغی تفسیر کبیر لذا اللہ می فرماید که این خلف ناخ وإن خلفنا اهل جزای گمراهی و کجروی خودشون را دید الا من تاب و ایمان و عمل الصالحات بشارت مگر کسی که توبه کند توبه بکند از کفر از فسق از شرک و ایمان بی اوارد و عمل صالح انجام بده یعنی هم اعتقادش رای اصلاح کنه هم عمل رای ف اولائکا یدخلون الجنه این گروه این افراد وارد بحش می ولا یظلمون شیئا به چیزی برنها ظلم نمی شه هیچ ظلم و ستمی برنها سورت نمی گیره کدوم جنت جنات عدن نلتی وعد الرحمن عباده بالغیب اینا ها که گفتیم فاولا که یدخلون الجنه این جنات عدن بدل از اون جنه هست از اون خودم جنت اون جنات جاویدانه و جنات عدن که جنات برای اقامه هست و همیشه برای ماندن هست اللتی وعد الرحمن عباده عبادهو بالغیب اون جناتی که رحمان بندگانش را وعد کرده وعد کرده کرد بالغیب ندیده وعد کرده یعنی بندگان بهشت ندیدند و مشتاق هستند انه كان وعده ماتيا الله می فرماید وعده یومی آیات ماتی یعنی آمدنی است شدنی هست آمدنی هست می و شما این مفعول ات یاتی هست شما خواهید دید و ام جنت کیفیتش لا يسمعون فيها لغوا در ان بهشت هیچ نوع لغوی نمیشنوند الا سلاما مگر کلمه سلام خوشامدگویی دعای خیر برای هم دیگر الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره و عشيا برای این بهشتی هر رزقش در بهشت است صبح و شام است رزقهم من نعیم الجنه بله انواع طرف و تفکه و خوشی و خوشگذرانی صبح و شام چنان جنت خوشی هست چنان جنت خوبی هست تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا اللہ می این بهشت اون بهشتی که ما وارث قرار دادیم نورث یعنی به عنوان ارث می دهیم نعطی و ننزل پذیرائی می می میدهیم از بندگان خودمون تلک الجنت اللتی نورت من عبادنا ما میدهیم از بندگان خودمون من کانت تقیی هر بنده نصیبش نمیشه اونی که, با اونی که با تقوی باشه اونی که با تقوی باشه قبلنم بار بار عرص کردم فقط تقوی برای بحیشت يتقي الشرك والكفرة والمعاصي كلها. من كان تقياً وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. إن جاء درواقي خاصتي أز بيانبري أزيم شأن مترشود. ون را الله تعالی جواب جواب میده. اونها در رابطه آیاتی خاص تند که فلان آیه نازل بشه، فلان مضمون بیاد، فلان موجود داستان های همینجا نوشتند که خاصل و خلاصه اون داستان ها اینه که آیاتی با مزامین خاصی با دست با احکام خاصی از پیغمبر خواستند تند که تنازل بکن. خداوند به پیغمبر دستور داد که به اونها بگو و ما نتنزل الا امر ربك منظور اون آیات اما بعضی گفتن نه رسول اکرم صلی الله علیه و به جبرائیل امین گفت که شما چرا دیر دیر پیش ما میایید ما زودتر شما را ببینیم پیغمبر وقتی که دلش تنگ میشد و دلش می گرفت دوست داشت که جبرائیل زودتر پیشش بیاد لذا خداوند به جبرائیل دستور داد که شما اعلام کن ما از خود نمیتونیم فرود بیاییم هر وقت دلمون خواست بیاییم پیش شما به زمین بیاییم هر وقت رب امر بکند ما اختیاری نداریم ما مأمور محض استیم درسته فرسته مقربه فرشته جایگاه داره فرشته فضیلت داره این تقربش این فضیلتش هم به خاطر امینی که مامور محض کوچکترین حرکتی از خودش نمی کنه لا یعصون الله اما امره و یفعلون ما یؤمرون لذا این جواب پیامبر هست و ما ننتزل الا بأمر ربك مفروض آیم. پایین نمی مگر به امر ربت رب اگر بگه لا نه، امر ما اونجا جایگاهی نداره له ما بین ایدینا فغط و ما خلفنا فقط و فقط برای اون الله ما بین ایدینا یعنی مستقبل ما و ما خلفنا پشت سر ما یعنی ماضی ما هم آینده هم گذشته تمام به دست خداست و ما بین ذالک یعنی حال. و ما كان ربك نسيا رب فراموش نمی کنه این و ما كان ربك نسيا بر ردی هست بر اون عقیده گمراهی بعضی روافز که میگویند بدار در عقیده بدا شنیدید شاید بدار در رابطه با خداوند عزوجل جایز میدانند بدا یک عقیده کفریهی هست که بر اساس اون انسان معتقد باشد خدای بالله ابتدا یک چیز تصمیم میگیره بعدا برایش ظاهر میشه که اون درست نشد غیر اون را تصمیم میگیره پشیمان میشه از تصمیم اولش لذا گویا خدای تلاف فراموش میکنه خیلی چیزها بازی که افراد رفتند اغراق کردند در رابطه با رسول الله درباره سیدنا علی درباره مسائل دیگر میگه اینجا فراموشی شده از طرف خدا الله در حالی که وما کان ربک نسی تمام این عقیده خرافاتی را رد میکنه رب تو هیچ وقت فراموش نمیکنه کدوم رب؟ رب السماوات والارد وما بینهما اون ربیک رب اسمان ها و زمین و ما بینشون است فعبدو بس فقط او را عبادت کن و صبر لعبادته و برای عبادت پروردگار تحمل کن استقامت کن صبر کن هل تعلم له سمیا آیا برای خداوند هم صفت سراغ داری سمیع به معنی هم نام است منظور اینه که همین صفاتی که خدا دارد او داشته باشه او مثل خدا خالق باشه مثل خدا رازق باشه مثل خدا مالک باشه مثل خدا مدبر و متصرف باشه عالم الغیب باشه چنین سمیه سراغداری چنین همصفتی سراغداری نیست پس خدا را فقط عبادت کن چون همصفتی او اصلا وجود ندارد ويقول الإنسان إذا ما ميت لسوف أخرج حيا تا إنجا بشتر بحث توحيد بود ودلائل نقلي از انبياء بود بعد بعدزين مبحث مبحث قيامت هست والشكوه هست از انسان وزجر سرزنش بر انسان که انسان جقدر کوتاه فکره انسان مسئله معاد را مسئله قیامت را با عقل و سنجش کچلوی خودش می سنجد عقل انسان قاسره عقل انسان زیاد تا دور کارایی نداره لذا بر اساس همین اعتراض میکنه و میگوید وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اَيْذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا انسان میگو یاد آیا هر وقتی که من مردم لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا آید ان قریب دوباره از قبل بیرون میشوام زنده آید دوباره زنده میشوام اللہ تعالیٰ میفرمائی اولا یذکروا الانسان آید انسان بیاد نمیاره. انسان بیادش نیست که انا خلقناه من قبل ولم یکو شيئا این زمانی بود که هیچ چی نبود ما آفریدیم او را خدا قادر هست که او را خلق می کند می چطور تو باره انسان را نمی پیدا کنه الله تعالی بعد از این سوگند یاد میکنه کند رب بکن الله سوگند یاد میکنه به ذات خودش به رب سوگند یاد میکنه که اینها را با تمام خدایان باطلشون ما دوباره بلند میکنیم فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ سَوْفَ يَرَى حَتْمًا حَتْمًا مَا أُنْهَا رَاح حَشْر ميكونيم دَر مَوْقِفِ حِسَاب دَر مَيْدَانِ حِسَاب وَهُمْ جِنِّ الشَّيَاطِين رَ الشَّيَاطِينِ جِنِّي وَإِنْسِي رَ وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ يُحْشَرُونَ مَعَ قُرَنَائِهِمْ مِنَ الشَّيَاطِين يعني أُنْهَا بَخ شیاطینی که قرین و همدم و همراهشون بودن با اونها یک جا حشرشون میکنیم بلندشون میکنیم ثم لننزعن عننا من كل شياتن ایهم اشد على الرحمن عتییا بعدا لنحشرن ثم لنحضرنهم سپس اونارا حاضر میکنیم اطراف جهنم جسی یعنی یعنی افتاده اونجا یعنی کنایه از آجده همه آبدان و ما بودن بزن و افتادند آجده هم شیاطین انسی و جینی و هم این آبدانیشان اطراف جهنم افتادند آجزند لحظه شماری میکنند که اونها را به جهنم میبرند ثملا نزیعن من کل شیعه سپس ما در میاریم بیرون میکنیم از هر گروهی از هر فرقه اونائی که بیشتر سرکشی کردند ایهم اشد علی الرحمان عتیا کدام یک بر رحمان بیشتر سرکش بوده یعنی هر گروهی که سرکشتر بوده اونها رو در میاریم اللهم قرطبی نوشت ثم لان زعنا من كل شیه یعنی ثم لان من كل فرقة. الا اعطى فالاعطى اون کی سرکشتر بوده و از اون سرکش‌تر دیگه سرکش‌تر یعنی که انهو یبتده و بتعذیب بی اشد دهیم عطیین گویه اول تو جهنم انداخته میشه اونی که از همه سر کشتر بوده بعدن گروه دوم در درجه دوم بوده بعدن گروه سوم که در درجه سوم بوده سمال لیه. یلیه الاخره لذا اللہ میفرمایه همه اینها رو میبریم اطراف جهنم بزانو میندازیم بعدن یکی یکی گروه گروه دسته دسته دست دست اونی که بعد سرکشتر بوده بدتر بوده اول اونها بعدن گروه دوم بعدن گروه سوم لاخره الله می فرماید ثم لا نحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیه سپس ما میدنیم که اولا بها اولاتر هستند یعنی مستحق ترستن از نظر داخل شدن به جهنم اولا بها صلیه صلی یعنی ورودن دخولا ما می دونیم که چی کسانی مستحق جهنم هستند. چی کسانی باید به جهنم بیرم لذا بر همون ترتیب داخل می کنیم وارد جهنم می کنیم و بعد الله تعالی می فرماید همی شما اونجا وارد می و این منکم الا واردها نیستی شما مگر وارد جهنم می شید تک تاك تکتون. تو کانا على ربک حتما مقضیه این بر رب لازم هست و یک فیصله هست حتمی هست مقضیا فیصله شده ببین چطور ما میتونیم هر یکی به جهنم بریم الله نجات بده الله میفرماید ان منکم الا واردا بعضی این توجیه را آوردند که همه انسان ها باید تو جهنم بروند ببینند و بعد به بهشت میرم بهشتی ها. اما برای اونها جهنم مثل آتش ابراهیم یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراهیم. بقیه جهنمی ها را می سوزاند ولی بهشتی ها فقط اونجا مناظر را می بینند. هیچ نو، سختنی هیچ نوع آتشی و اثر آتشی برای اونها نیست. فقط تماشا میکنند. بعضی اینه گفتند. و بعضی گفتند مراد از ورود، عبور از جهنم است داخلش نه بلکه از فراز جهنم رد میشن تهش را داخلش را کاملا میبینند چرا چون پل رات بر روی جهنم نصب شده قرار گرفته مثل یک پولی هست که از جهنم میگذارد لذا چون از جهنم همه شما عبور میکنید این عبور را به ورود تعبیر کردند که بر فضایش میری بر فرازش میری گوی از داخلش داری میری حسن بصری این را گفته ان الحسن الورود یعنی المرور علی من غیر دخول بر اون مرور میکنین به غیر از اینکه داخلش بشید و روی ازالک عن قتاده و ذلک المرور علی سراط الموضوع على متنها این ورود از کجا میشه از روی سرات میشه پل سرات که پل سرات را خدا بر پشت جهنم گذاشته از روی سرات که بری داخل جهنم کاملا مشهود است الله اعلم الا اي حال الله می فرماید و ام منكم الا واردها کان على ربك حتما مقضیه هیچی کنیس هست شما مگر وارد آن میشه این پروردگار لازم هست و فیصل شده است. ثم ننج الذين اتقوا سپس ما نجات میدهیم کسانی رکی متقي باشند ابتداعا یا بعد از عذاب دادن و نظر الظالمين فيها فیها جسیا و می‌گذاریم را یعنی مشرکان را در جهنم جسیم بزانو افتاده انجاء آجز افتاده و اذّا تطلّع عليهم آیات انجازا جرج سرزنش بر کفار است با وجود این آیات هرگاه تلاوت میشه شه بر آنها آیات بینات قال الذين كفروا للذين امنوا میگوین کسانی که کفر کردند به مؤمنین میگن ای الفريقین خیر و مقاما و احسن ندییا کدام یک از دو گروه ما گروه مؤمنین گروه مشرکین کدام بهتر است از نظر جایگا و کدام بهتر است از نظر همنشین ندی اون مجلس را میگن هم مجلسی یعنی اونها افتخارش این بود که در مجلس ما بزرگان استن تمام سرات تمام سرداران تمام فوضال ها سرمایدار ها در مجلس شما همه غلام ها برده ها فقران معلوم میشه که وزی ما بهتره. الله تعالی میفرماید که خیلی ها مثل شما را ما کردیم کسانی بودن از شما سرمایدارتر و اصلا شما خوش رنگتر، خوش نماتر زیباتر و کم حلکنا قبلهم من قرن چقدر قدرها ما حالات کردیم قبل از اینها از قرون گذشته هم احسن و اسافن و رئه اونها از نظر اساس یعنی کالا مط دنیا مادیات بهتر بودن یعنی بیشتر داشتن و احسن و ریا و از نظر نما؟ بستله دکر، دی ریان دید مرئی نه از نظر دید و از نظر ظاهر هم زیباتر بودند از اینها خوشنما‌تر بودند هم سرمایه‌دارتر بودند پس الله عزوجل اگر کسی را نجات بده بر اساس نه پول نه بر اساس ظاهر و زیباییش است قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مده الله می فرماید کہ بهونها بگو هر کسی در گمراهی باشد ضلال یعنی الشرك در شرک باشد فليمدد لَهُ الرَّحْمَانُ مده خدا به او مهلت میده و می دے ومی کشاند اورا کشاندنی یعنی به او چند روز مهلت میده امکاناتی برایش فراهم میکنه زمینه زندگی بیشتر و استبتاع بیشتر استفاده بیشتر از دنیا برایش فراهم میکنه حتی اذا او ما يعدون حتی وقتی که میبینند اون چیزی که واده داده میشوند همین انسانها یا عذاب را میبینند بعضی که هنوز از قیامت فاصله دارند و اما الساعه یا قیامت را میبینند انجا میگفتن که یول فریقین خیر و مقام و احسن و؟ ندیه از ما و شما مسلمانان و غیر مسلمانان چه گروهی از نظر جایگاه بهتره از نظر همنشین و هم مجلس؟ الله می فرما اونجا وقتی اذبیت میدونن که کی بهتره؟ آیا این پارتی به دردش میخوره؟ آیا اهمین چار خور و مفتخور که دا جنب جمع بودن اونجا میاند دردی برایش درمان می کنند؟ اللهم يفرمون فسيعلمون ان وقت وقت كي قرفتاري ما بيأ يد ميدانا من هو شر مكانا چكسي باترس از نظر مكان وأضعف جنداء وچكسي از نظر لشكر زيب ترس انجا ميدونك لشكر شن و الله الذين اهتدوا هدا والله الله تا ل در کسانی که هدایت شوند در هدایتشون یعنی وقتی که در دنیا مسائب و سختی بید، اونا هدایتشون و ایمانشون اضافه میشه. والبقیات الصالحات خیر عند ربکا. و اون باقیاتی که صالح خوب هستند، اونها بهتر نزد پروردگار از نظر سواب و از نظر بازگشت. در سر انجام یعنی چی؟ یعنی هر چی شما برای خودتون عمل بگزارید به اعتبار عجر هم برای شما بهتر از نظر اینکه به شما بر می گردند سوابشون شم به شما می رسد بهتره افرائیت اللذی کفر بی آیاتنا وقال لعوت ین مالا و ولدا این در رابطه با مشرکی بود که حضرت خباب رضی الله تعالیٰ عنہ از او مال میخواست خواست سرمایه می خواست وام می خواست. رفت پیشش بعضی میگه عاصب نوائل بود رفت پیشش و گفت که پول من را بده این روز و فردا میکرد، کرد روز و فردا اذیت می کرد هر روز او یک روزی گفت که من به شرطی بهت میدم حسابت را میدم پولت را میدم چون من شدیدم تو رفتی و از طرفداران محمد شدیم به او ایمان آوردی مسلمان شدی تو برگردی از اون دین برگردی من کل پولت رو یکجا میدم حضرت خباب رضی الله تعالی او ناراحت شد گفت که تو اگر بمیری دوباره زنده بشی دوباره بمیری هم من از اون مسیری که انتخاب کردم بر نمیگردم او زد خنده قهقهه‌ای گفت که عجب پس ما میمیری و دوباره زنده میشیم همین عقیده قیامت را مسخره کرد خب باشه اون وقت که من دوباره زنده بشم حتما از این بیشتر دارم اینجا که خدا به من اینقدر داده حتما اونجا دو برا سرمایه میده وقتی دوباره زنده شدم یادم بنداز که ح را بهت بدم. اونجا دوباره بهت میدم مسخرهش کرد. اللہ تعالی می فرماید افر ایتا لذی کفر بی آیاتنا آیا دیدی ان انسانی که کفت کرد وقال لعوتیدن مالا و ولدا گفت که حتما من دادی میش و مال اولاد اونجا خیلی زیاد اون وقت بیا حساب ترمیدم این الان لازم نیست که فرد خاص هر کسی که قیامت را تمسخر می کنی یا آیا درباری است؟ اطلع الغیب آیا اون بر غیب مطلع هست ام اتخذ عین در رحمان عهدا یا اینکه پیش رحمان عهد و پیمانی گرفته که حتم خدا اونجا زندش بکنه بهتر بده کلا ردعی از هرگز چنین نیست برای او وعدی نیست برای او هیچ خیر و خبری نیست سنک تو بما یقول ان قریب ما منویسیم اون که میگوید هر کفر گویی که دارد هر یعب گویی که دارد ما منویسیم و نمددو له من العذاب مدّا مد و مامی کشیم برای اون عذاب را کشیدنی یعنی عذابش را لحظه بلحظه اضافه میکنیم کنیم و نرثه ما یقول نرثه یعنی نكتب آنچه که میگوید اون را ما به ارث می یعنی ما منویسیم باقی می و یک تینا فرد پیش مات تک من الاصنام وما معهم وسائر المعبودات الباطلة. تمام معبدان الباطلی هیچی نیست تنها تنها واتخذوا من دون الله آلها الله زاجبهم اینها به غیر از خدا دیگران را به عنوان معبود انتخاب کردند ليكونوا لهم عزه تاک اون معبودان برای اینها کمکی بشند عز یعنی مددگار عزا ای اعوان و انصار اینها غیر خدا دیگران را انتخاب کردند تا برایشون چه بشند یار انصار میشن کلا بازم ردعیه هرگز چنین نیست همین خدایانی که اینها اونا رو صدا میزنند زنن سا عبادتهم و یکونون علیهم ضد اونها نسبت به عبادت اینها چی میکنند کفر میکنند میگن خدا عبادت ما عبادت نکردند ما کنو یا نیابدن. و یکونون علیهم ضد و اونها بر علیه اینها چی میشوند مخالف میشوند بس اینها بیچارها بی خود خودشون را معطل کردند و می که ما آنها را عبادت می کنیم آنها مخالفشون میشن آنها ضدشون میشه آنها بر علیه اینها اونجا گزارش میداد الم ترو ان ارسلنا الشياطين علی الکافرین علی الکافرین تؤزهم ازا فلا تعجل عليهم اینما نعد لهم عد، یوم نحشر المتقین إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. در آیات بحث ظلال مشکین را، گمرهای مشکین را, را خاندی. و ان كان قلمان كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا هر کسی در گمراهی باشه در شرک باشه خدای از او, او را می و او را میبرد به سوی جهنم حال در اینجا علت ظلال هست دلیل ظلال هست علت ظلال چیه خداوند میفرماید از علت زلال تسلط شیاطین بر این افراد است که شیاطین را بر خود مسلط کردند و شیاطین آنها را تحریک می کنند تشویق می کنند به گناه به معصیت به شرک به فساد و اینها هم حرف شنوی دارند الم تر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين یا نمی بینی آیا خبر نداری که ما فرستادیم شیاطین را بر کافرین کتئز زهم اذّا یعنی اونها تهیج می کنند، تشویق می کنند، تشیق کردندی، تئز زهم تغریهم و تهیجهم علی المعاصی تهیجا، اونها را بر معاصی چکار می تشویق اقراء. تو غریهم اغراءن تو حیجهم تحییجن تشویق میکنن تو شبقهم فلا تعجل عليهم. این که شیاطین کفار و دوستان خودشون را تشویق میکنن برای عذاب اونها عجل نکن خدا زود عذاب بده بیونها نه اینما نعد لهم عده ما برای اونها میشماریم شمردنی این تخویف است این تهدید است خدا میفرماید ما می شماریم ایامشون را بالاخره هلاکتشون بل هم میاد اون روزهایی که باید نابود بشند اونها را هم ما داریم می شماریم انما نعد لهم عددا می شماریم شمردنی. کی هست اون روز که خدا اینها را عذاب بده اینجا اون روز با بشارت اول شروع میشه یوم انحشر المتقین الی الرحمان وفدا اون روزی که ما حشر میکنیم جمع میکنیم تمام متقیان را تمام پرهیزگاران را تمام متقیان و پرهیزگاران برده میشوند الی الرحمان به سوی رحمان وفدا یعنی به صورت هیئت گرو گرو بعضی گفتن وفدا یعنی رکبانان هم سواران متقیان رابط در محضر الرحمان میبریم که خداوند بر اونا لطف و مرحمت میکند و نسو المجرمین مجرمین جهنم وردا سوق میدهیم راه میکنیم مجرمان را بسوی جهنم وردن وردان بعضی گفتن عطاشم تشنه ورد میدونید که اون محلی را میگویند که آب را از اونجا بر میدارن بِعْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ شما خواهند دید؟ اون جایی که آب میاد از زمین بیرون، از قنات، آب برمیدارد. لذا، اون ورد را ذکر کرده کنایه از تشنگی هست. بعضی گفتن نه، وردن در مقابل اون وفدن هست. متقین سواران میروند، اینها وردن یعنی مشاتن، پای پیاده میروند به سوی جهنم. مجرمین را سوق می دهیم، مجرمین را می بریم به سوی جهنم وردن یعنی با پای پیاده یا تشن لبان می بریم خب این مجرمین طرف دارند، بعضی از آلحه بودند که اینها اونها را عبادت می کردند، صدا می زدند، گشتند می کشتند برای شون، شطور می کشتند، نه ایچ که نمی شفاعت بکنه، جای سفارش شفاعت نیست نفی شفاعت قهری لا یملکون الشفاعه مالک شفاعت نیستند هیچ نو سفارشی برای آنها هیچ کسی نمی کنه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر کسی که گرفته نزد پروردگار عهدی یعنی کسانی که با خدا عهد دارن بر اون سفارش میشه چه عهدی ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید مراد از عهد ای لا اله الا الله عهدی که شما با خدا بستید شما اقرار کردید لا اله الا الله این لا اله الا الله یک تعهدی برای شما ایجاد میکنه یکی برای الله تعهدی که برای شما ایجاد میکنه اینه که شما خدا را کاملا فرمان بر فرمانبری بکنید با خدا کسی را شریک نسازید همون که رسول الله به حضرت معاذ فرمود میدونی که حق الله بر بند چی هست گفتی الله و رسولش عالم گفت که اینکی او را عبادت کنن و با او کسی را شریک نسازن یعنی همین لا اله الا و بعد فرمو میدونی که حق بنده بر الله چی هست اینکی اونها را عذاب نده پس کسی که با خدا این عهد را دارد لا اله الا الله را دارد توحید را دارد برای او سفارش میشه برای او شفاعت میشه الا من اتخاذ عند الرحمن عهد اما این مشرکان چقدر پرت هستند چقدر از مسیر به انحراف کشیده شدند که بجای اینکه به این عهد عمل کنند به این عهد پایبند باشند برعکس وقال گفتند انتخاب کرده. چی میگوین؟ رحمان برای خودش فرزند انتخاب کرده. ایا الله؟ این اتخذ الرحمن ایا الله؟ این الله؟ این درصد کرده. ایا مخالفه الله؟ این یعنی این یعنی شرک ایا سبیل الله؟ این این می گوین رحمان برای خودش فرزند گرفته نائب گرفته لقد جئتم شيئا اد الله می فرماید ای گویان دگانی که چنین میگویید لقد جئتم شيئا همان شما آوردید چیزی اد یعنی بسیار سنگین اد سنگین ای المنکر العظیم شما منکر بزرگی را مرتکب شدید گناہ بزرگی رکی برای خدا فرزند اثبات می کنی یا نائب چنان این سخن شما سنگی است که نزدیک آسمان ها به بی انفجار بیند منفجر بشه بی تکاد السماوات و یتفطر نمین نزدیک از اس که آسمان یتفطر نمین ہو من منفجر بشه و بترکت از این از این جمله سنگینی این جمله و از بسک این جمله سخت و کفر بزرگی است وطن تنشق الارض و نزیک است که زمین شکافت بشه یعنی زمین پار پار بشه و تخیر الجبال و و نزیک است که کوها بیفته افتادنی تخیر الجبال و را گفتن مفعول مطلق تخیر هست من غیر لفظه ای تخیر الجبال و خررن حدا یعنی افتادن از چی نزدیک آسمان منفجر بشه زمین شکافته بشه کوها بیفته از اینکه اندعو لرحمن ولده اندعو بسبب اندعو بسبب اینکه ان انها خاندان برای الرحمن فرزندی از این نزدیک آسمان چی بشه منفجر بشه در حالی که وما ينبغي لرحمن ان یتخیل ولدا برای رحمن مناسب نیست برای الله مناسب نیست که سزاوارش نیست لایقش نیست که ان یتخید ولد اون فرزندی و نائبی برای خودش انتخاب کنه خدا چه نیاز دارد خدا بینیاز است همه دنیا همه من فی السماوات الارض، همه مخلوق خدا هستند عبید خدا هستند بنده خدا هستند چرا خدا برای خودش فرزاً بيغيرت إن كل من في السماوات والأرض نيس تمامي انهاي كدر آسمانها وزمينة يعني تمامي في الاشتغاني كدر آسمانها وأنبياء وبجنة وإنسي كدر زمينة إلا آت الرحمن عبدا مگر مئ آيند بيش الرحمن آتي اسم فاعل است يعني مئ آيند کسانی هستند که میآیند پیش رحمان به عنوان عبد میایند به عنوان غلامو برده میایند لقد احصاهم عدهم عد الله تعالی همه را احاطه کرده یعنی همه را میداند و برشمرد اونها را برشمردنی الله همه را برشمرد همه اونها را الله تعالی در علم خدا هستند کیا هستند چه مقداری هستند وكلهم آتيه يوم القيامه فردا همه اینها میایم پیش خدا علما فردا فردا یعنی چه تک تنها این نیست که اینها با هم دیگه یک نسبتی داشته باشند همه پیش خدا به تنهای میای یعنی محتاج خدا هستند تفسیر روحمانی اینجور تفسیر کرده این و كلهم آتيه يوم القيامه فردا یعنی کل من فی السماوات والارد تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند چه فرشتحار چه انبیا چه بشر چه جن العابدین معبودین اونایی که عابدن یا اونایی که مردم به عنوان معبود اونا را انتخاب کردند همه می آیند آتیه از و جل منفردن عنی الاخر پیش خدا می دیگری جدا فرد یعنی چه؟ از هم دیگه جدا فیان فرد العابدون عن الالهت التي زعموا انها انصارا و شفعا جدا میان از اون معبودانی که فکر میکردن ای این معبودان چیئی ما هستند خدایان ما هستند سفارش کنندگان ما هستند و المعبودون عن الاتباع اللذین ابدوهم و بعض معبودان جدا از این اتبای خودشون این اتباع کنها را عبادت همه جدا از هم میان کلهم آتیه یوم القیامته فرد این نسکی گروهی حزبی باهم نه هر یکی نفسی نفسی برای خودش فکر میکنه اما بعد از این وعید خدای عزوجل بشارت بیان میفرما این الذين امنوا وعملوا الصالحات همانها ای که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند اونهای که خوب زندگی کردند ساجعل لهم الرحمن و الدار ان قریب در دنیا این سمره دنیوی است قرار میده برای آنها خود رحمان ودن دوستی شطور دوستی یعنی خدای تعالی محبت اونها را در دل مخلوق می اندازد کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام میدهند خدا دوستی انها را محبت انها را در دل خلائق قرار میده خود خدا هم اونها رو دوست داره به بندگانش میگه این بندگان به بقیه مخلوقات میگه ای مخلوقات این بنده را من دوست دارم شما هم دوست داشته باشید او اورا دوست دارند پرندگان اورا دوست دارند چردگان اورا دوست دارند انسانها اورا دوست دارند فرشتگان اورا دوست دارند. همه اورا دوست دارند چون خدا دوستش داره خداوند دوستی او را در قلب همه القا میکند سیجعل لهم الرحمانه ود این بشارت شد این کسی هست که در دنیا این جایگاه را داره در آخرت که شما خاندید پیش خدا میره در بهشت فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِ که در پایان سوره این سوره مریم که سوره واقعا دفع شبهات کرد حقیقت ایسا و مریم را بیان کرد و حقیقت انبیاء را بیان کرد این قرآن چی ساده؟ بزبانی شما ما نازل کردیم ای محمد صلی الله علیه وسلم به وسیله این قرآن تفهیم کن کی و کسانی که ایمان می‌آورند و تقوا انتخاب می‌کنند انها را مجد بله بشارتشان بده فانما یسرناه بلسانک جزئنی نیست که ما این را آسان کردیم بزبان تو لتبشرا بالمتقین به وسیله این قرآن اهل تقوا خدا ترسان را مجد و بشارت بده و تنظر به قوم اللد تا اینکه که بترسانی به وسیله این قوم اللد قومی که قوم لد هست لد یعنی چه یعنی جدل کننده کسانی که درگیر میشن جر و بحث میکنند اونایی که اناد دارن زد دارن قوم متخاصم قوم زدی قوم اناد کننده اونا را بترسوند و الله تعالی می فرماید که نه تنها از عذاب آخرت بلکه از عذاب دنیا هم بترس. در این دنیا ببین چقدر ما از همین قوم لوط هلاک کردیم و کم اهلکنا قبلهم من قرن چقدر ها را ما هلاک کردیم در قرون گذشته تمام اقوامی که ما خاندیم خدا نابودشون کرد هل تحس منهم من احد احساس میکنی از اونها کسیره کسی هست الان؟ از بقایه قوم فرون پیدا میشه؟ قوم لوت چی؟ قومی آت هل تحسو من هم احد این؟ او تسمع لهم رکزه؟ آیا برای، یا انکه برای انها پیچ پیچی میشه نبی؟ رکز میگوین صدای آئیستیشون را یعنی کچک تنی صدایی اثری از حیات، اثری از زندگی برای اونها میبینی؟ معنی اینه که ما کلا اونها را از بین بردیم ریششون را برکندیم حتی صدای خفیفشون را شما نمیشنوید حتی لا تسمع منهم صوتا خفیفا فضلا من غیرهی صدای ای که فقط اثری از حیات اونها باشه حتی شما نمیشنوید چه برست کمال دیگری از اونها ببینید پس خدای تعالی وقتی نابود بکنه کاملا نابود میکنه بنابر این کسانی که در مقابل توحید پروردگار هستند کسانی که ایمان ندارن و شرک میکنند هم برای اونها عذاب در آخرت است و هم برای اونها عذاب در دنیا است